سلام شنوندگان عزیز کانال هزار افصال. امیدوارم که حالتون خوب باشه در قسمت قبلی داستان پریه سفید دم رو براتون میخوندم تا اینجای پیش رفتیم که به سرزمین ایزدبان و میتویق وارد شدند اونجا سرزمینی بود که همه یخ میزدن و سرمایه خیلی شدیدی داشت و کنارهاش آتیش بزرگی برافروخته بود که پترو نباید میرفت اونجا خودش رو گرم میکرد. حالا ادامه داستان رو بشنویم. با هر قدمی که تو سرزمین می برمیداشتن هوا سردتر و یخزده تر می شد. به طوری که سرمایه تا مغز استخونشون رسوخ کرده بود. اما پترو بی خیال بود. چون که نبردایی که کرده بود اونو قوی تر و نیرومندتر ساخته و طاقتشو بالا برده بود. اون دلیرانه در برابر سرما ایستادگی کرد. در امتداد دو طرف جاده آتیش بزرگی براف بود و مردانی کنارشون ایستاده بودند. اونا با گذر پترو دلنشینانه با اون سخن میگفتند. گفتن و دعوتش میکردن که پیششون بیاد نفس تو دهنش یخ زده بود اون توجهی به اونا نمیکرد فقط به اسبش هی میزد که تون تر بره اون که پترو چه مدت تو سکوت با سرمایه جانسوز دست و پنجه نم کرد کسی نمیتونه بگه چون که هر کسی میدونه که سرزمینه میتویخ رو نمیتوان در یک روز پیمون اما اون تلاش خودشو کرد، با اینکه که یخ زده اطرافش ترک برمی داشتند و تکه تکه می و دندوناش از سرما تق تق به هم می و از پلکاش یخ آویخته بود، اون راهش ادامه داد. سرانجام به اقامتگاه میتوخ رسیدن. اون از اسب پایین پرید و افزار رو روی گردن اسب انداخت و وارد خونه شد. اون گفت روزت به خیر مادر کوچک ایزد بانو جواب داد بسیار سپاسگذارم دوست یخزده من پترو خندید و منتظرمون تا اون صحبت و ادامه بده میتفق در حالی که به شانه های پترو میزد گفت تو همه چیز شجاعانه تحمل کردی و حالا باید پاداش بگیری اون صندوق آهنی رو باز کرد و از اون جعبه کچیکی رو بیرون آورد. ایزد بانو گفت گوش کن، این جعبه کوچک سالهای سال که اینجا افتاده و منتظر مردی بود که راهش رو تو سرزمین یخی بپیمایه. بگیر و اونو مثل گنج حفظ کن چون که روزی به دردت میخوره. اگه اونو باز کنی، اون چه میخوای بدونی میگه. همچنین اخبار سرزمین پدرتو به تو میده. پترو با قدرشناسی شناسی از اون سپاسگزاری کرد. سوار اسب شد و به راهش ادامه داد. وقتی از اقامتگاه میتوخت دور شد، جعبه را باز کرد. صدایی از داخل جعبه پرسید چی فرمان میدی؟ اون که تا حدی عصبی بود گفت، میخوام از حال و روز پدرم با خبر شم. جعبه جواب داد، الان با بزرگان دربار، تو جلسه شورا نشسته. پترو پرسید: حالش خوبه؟ جعبه گفت: دقیقا نه، چون که از چیزی شدیداً خشمگینه. جوون پرسید: اما چه چیزی اونا عصبانی کرده؟ جعبه جواب داد: برادرات فلوریو کاستان. به نظر میاد که اونا میخوان حکومت رو به دست بگیرن. و امپراتور پیر معتقده که اونا شایستگی این کارو رو ندارن. پترو با صدای بلند گفت از به خوبم اجاله کن. نباید وقت تلف کنی. اون جعبه رو بست و تو جیبش گذاشت. اونا مثل اشباه و گرد با و مانند خفاشان شکارچی در نیمه شب با سرعت پیش داختن. اینکه چه مسافتی رو پیمودن کسی نمیتونه بگه. چونکه راهی بس دراز و پرمسافت بود. بالاخره اسب گفت صبر کن باید توصیه هایی به تو بکنم. پترو پرسید چه توصیه هایی؟ اسب گفت تو سرمایه کشنده رو تحمل کردی. حالا باید گرمای مرگاور رو تحمل کنی. گرمایی که حتی به خوابم ندیدی. اما تو نشون دادی که در همه حال دلیر هستی. پس نذار کسی وسوسه و دل سردت کنه. وگرنه بلا به سرت خواهد اومد. پترو جواب داد بپیش. تو هم نگران نباش. اگر از چنگ سرما و یخزدگی گریختن نمیذارم که گرمای شدید و مرگ بار ارادم و آب کنه. اسب گفت ساده نباش. این گرما مغز استخونه هم آب میکنه. با گرمای جانگوداز در قلمرو پادشاهی ایزد بانو در روبرو خواهی شد و بی شوخی داغ داغ بود آهن نعل اسبار شروع کرد به زوب شدن و پترو بیخیال خیال همه چیز بود سیل عرق از سر و صورتش جاری بود و پیوسته با دستکش زحقش صورتشو خشک خشک کرد. اون چلن گرمایی و به عمرش ندیده و دربارش نشنیده بود راه صاف و بیسنگلاخ بود و از درههای باسفا با درختای سایهانداز و جویبارای آب میگذشت قلب پترو با نگاه به اونا آتیش میگرفت و دهانش از تشنگی میسوخت بدتر از همه در میون گلای زیبا و شاداب دوشیزگانی زیبا ایستاده و نشسته بودن و اونا با صدای نرم خودشون فرا میخوندند اما اون به توصیه اسب ای برای اینکه گرفتار افسونشون نشه چشماشو بست. هر یک از اونا گفتند بیا قهرمان من بیا استراحت کن گرما تو رو از پا میدازه. پترو سرشو داد و چیزی نگفت چون که قدرت سخنگفتنها از دست داده بود. تو چنین وضعیت وحشتناکی اون مسیر طولانی و پیمود. اما چقدر؟ کسی نمیتونه بگه. ناگهان گویی از شدت گرما کاسته شد و در فاصله ای دور اون خونه یا روی تپه دید. اونجا اقامتگاه ایزدبانو در بود. وقتی به اونجا رسید دهنه اسب و کشید و خود ایزدبانو برای دیدار با اون از خونه بیرون اومد. اون به پترو خوش آمد گفت و مهربانانه به خونه دعوتش کرد. بعد از اون خواست تا ماجره هاشو تعریف کنه. پترو هرچی براش اتفاق افتاده بود گفت. سپس به ایزد بانو بدرود گفت. چون که نباید وقتشو تلف کرد. اون گفت چه کسی میدونه که چشمه پریه سپیددم چقدر از اونجا دوره؟ ایزد بانو گفت لحظه ای تحمل کن. چون که میخوام کمی راه نمایید کنم چیزی نمونده که وارد قلم ناهید بشی نزدش برو و پیغام منو به اون برسون امیدوارم اسیر وسوسه هاش نشی و اونجا نمونی چون که تغییر روا نیست سر راه بازگشتت پیشم بیاد تا چیزی به تو بدم که به دردت میخوره پترو سواره اسب شد و هنوز چند قدمی پیش نرونده بود که پا به سرزمینی جدید گذاشت. اونجا نگرم بود نه سرد. هوا مثل هوای بهاری معتدل بود. راه از بوتهزاری انبوه پوشیده از شناخار میگذشت. پترو با دیدن چیزی در دور دست دور درست در انتهای بوتهزار پرسید: « اون چیه؟ چونکه چیزی شبیه اون قنه رو دیده بود. اسب جواب داد؟ اونجا خنه‌ای و ناهیده. اگه تان‌تر برونیم قبل از تاریکی هوا به اونجا میرسیم. با گفتن این حرف اسب مثل تیری که از کمون رها شده درست موقع غرغومیشه هوا به جلو دروازه اقامتگاه ناهید رسیدند. با رسیدن به اونجا قلب پترو به تاپ افتاد چون که تو تموم طول راه گروهی از موجودات سایعی رو که از راست به چپ از جلو به عقب در حال پای بودند دیده بود. پترو با اینکه مرد شجاعی بود با دیدن اون اشباه رقصان کمی احساس ترس کرده بود. اسب گفت اونا به تو آسیب نمی اونا دخترای باده چرخنده هستند که به هنگام انتظار برای قولک ما خودشونو رو سرگرم می اسب جلوی خونه ایستاد. پترو پایین اومد و به طرف در رفت. اسب با صدای بلند گفت: زیاد عجله نکن. قبل از هر چیز باید چند نکته رو یادآوری کنم. این گونه وارد خانه و نهید نشو. باد چرخنده همیشه به اوست. پترو پرسید: پس باید چیکار کنم؟ اسب جواب داد: تاجه گل مسی و بردار و به اون تپه کوچیک که اونجاست برو. وقتی به اونجا رسیدی به خودت بگو آیا تا چنین چون زگان زیبایی وجود داشتن؟ چون این فرشتگانی؟ چون این پریانی؟ بعد تاجو بالا نگهدار و فریاد بزن آه ای کاش کسی این تاجو از من میپذیرفت ای کاش ای کاش و تاجو پرتاب کن. پترو پرسید: حالا این همه کارو برای چی باید بکنم؟ اسب جواب داد: سوال نکن. فقط برو این کارو انجام بده. و پترو همین کارو کرد. درست موقعی که تاج مسیو به هوا انداخت، باد چرخنده اونو تو خودش گرفت و تکه تکه کرد. پترو نزد اسب بازگشت. دوباره اسب با صدای بلند گفت صبر کن. چیزای دیگه هم هست که باید بدونی. حالا تاج نقره رو بردار و اون به طرف پنجره ی این ی بانو و ناهید پرتاب کن. وقتی پرسید که اونجاست جواب بده که مسافری پیاده هستی و راه تو تو خارزار گم کردی. بعد ناهید به تو میگه از همون راهی که اومدی بازگرد. اما حواست باشه که از جاد تکون نخوری. در عوض با اطمینان خاطر به اون بگو نه در واقع نمیتونم چون این کاری بکنم چون که از دوران کودکیم قصه های زیبایی حیرت انگیزه ایزد بانونا هیچ شنیدم. در ضمن کفشای چرمی تخت فولادی داشتم و نه سال و نه ماه تو سفر بودم. توی نبرد تاج نقره به دست وردم و میخوام اونو به تو بدم و امیدوارم که بپذیری. من برای رسیدن به اینجا سختی ها و رنجای زیادی کشیدم. اینا حرفاییه که باید بگی. هرچی بعد از این پیش میاد دست خودته. پترو سوالی نکرد و گراست به طرف خونه رفت. تا این موقع هوا تاریک شده و فقط پرتوهای روشنایی که از پنجره های خونه بیرون میزد فضا رو روشن ساخته بود. با شنیدن صدای پاهاش دو سگ با صدای بلند واق واق این ایزد بانو پرسید کدوم سگ واق واق میکنه؟ آیا از جونش سیر شده؟ پترو که کمی ترسیده بود جواب داد منم ایزد بانو. راهم و تو بوت زار گم کردم و نمیدونم امشب و کجا سر کنم. ایزاد بانو فوراً پرسید اسب تو کجا گذاشتی؟ پترو پاسخ نداد. اون مطمئن نبود آیا دروغ بگه یا حقیقتو به زبون بیاره. لاهید که از کنار پنجره دور میشد گفت پسرم برو پی کارت. اینجا نمیتونی بمونی. پترو هرچی را رو اسب گفته بود تان به به زبون آورد. هنوز آخرین کلمه ها رو نگفته بود که ایزد بانو ناهید پنجره رو باز کرد و با لحنی آروم از او خواست پسرم بذار حلقه گل نقره ای تو ببینم و پترو حلقه گل نقره ای رو به اون داد ایزد بانو به حرفش ادامه داد داخل شد از سگا نترس اونا همیشه تابعه خواست و اراده منند. سگا آروم شدن چون که با گذر پسر جوون از کنارشون دوماشون را برای اون تکون دادند. پترو پس از ورود به خونه به ایزدبانو شب بخیر گفت و کنار آتیش نشست. اون با آرامش خاطر خود را برای شنیدن حرفای ایزدبانو آماده کرد. بیشترین قسمت حرفای اون درباره نگونبختی و درماندگی بشر بود و خشم و عصبانیت به وضوح تو سخنانش آشکار بود. پترو با سخنان او موافق بود و همان گونه که آمخته بود نهایت ادب به جا آورد. اما اون بسیار که بود. نمیدونم چرا پترو داشت اونو با چشاش میخورد و آیا این کار باعث شد که ایزد بانو اخب کنه؟ ولی اینو میدونم دونم که اگه پترو هفت تا دا جون داشت و هر یک از این هفت درازای عمر معمولی یه نفر بود اون دست از این کار بر نمی‌داشت خب ناهید هم غالبا از این کار خوشش می اومد و دوست داشت پترو همچنان به اون خیره بشه بعد ناهید گفت همه چیز این گونه که به نظر میرسه نبود دنیا موقعی که به دنیا اومدم اینجوری نبود با بزرگ شدنم دنیا هم شکل گرفت همه فکر میکردن که من زیباترین موجودی بودم که تا اون زمان دیدن. برای همینم بسیاری از افراد از من بیزار بودند. اما هر صد سال روی صورتم یه چین و چوروک حالا همون گونه که میبینی، بسیار پیرو که هنسال شدم. بعد قصه زندگیچو برای پترو تعریف کرد و گفت که دختر فلان امپراتور بود، و نزدیکترین همسایشون پریه سپیده دم بود. اونا همیشه با هم جنگ خشونتبار داشتن و به خاطر این مسئله دچار زحمت و دردسر زیادی شد. پترانه نمیدونست چه کنه. مدتی در سکوت به حرفای اون گوش کرد. اون گاهی میگفت بله بله. حتما با شما بد رفتاری شده. باید رعایت می میکرد. بیش از این چه میتونست بکنه؟ ای بانو پس از صحبتهای طولانی با اینکه هر دو خوابشون میومد به حرفش ادامه داد. درست وسط خونه پری چشمه آبیه و هر کی از آبش بنوشه مثل گل سرخ تازه و شاداب خواهد شد. از اون چشمه برام ظرفی آب بیار. منم به نشونه قدردانی از تو هر کاری لازم باشه برات انجام میدم. کار آسونی نیست. هیچکس بهتر از من در این مورد چیزی نمیدونه. قلم روی پریه سپی دم، از هر طرف توسط جانورای وحشی و اجده های حراسنگیز محافظت میشه. اما من اطلاعات خوبی در اختیارت میذارم. و البته چیزی هم دارم که به دردت میخوره. اون از جاش برخاست و در صندوق آهنی و باز کرد و از داخلش یه نیه بسیار کوچیک برداشت. اون پرسید اینو میبینی؟ اینو موقعی که جوان بودم پیرمردی به من داد. هرکی به نوای این نیه گوش کنه به خواب میره و هیچی بیدارش نمی کنه. این نیه تا زمانی که در قلم روی پریه سپیده دم هستی پیش خودت نگه دار. به کمک نی در امن و امان هستی. پترو به اون گفت که با رسیدن به چشمه پری سپیددم دم کار دیگه ای باید انجام بده. ناهید با شنیدن سخنان پترو بیشتر خورستند و رضایتمند شد. پترو به اون شب به خیر گفت. نی و تو کیسه گذاشت و تو پایین ترین اتاق کنه دراز کشید و فورا به خواب رفت. پیش از سپید دم بیدار شد. اولین کاری که کرد به سراغ اسباش رفت و مقداری ذرت به اندازه غذای خودش پیش اونا گذاشت. بعد اونا رو به آب خور برد تا آب کافی بنوشد. در مدتی که اسبا آب میخوردن خودش لباس پوشید و آمادهی رفتن شد. ناهید سرش از پنجره بیرون کرد و گفت سب کار، هنوز حرف دیگه این مونده که باید به تو بگم. یکی از تو اینجا بذار و فقط سه تا رو بردار آهسته برون وقتی به قلمرو پری سپیده دم رسیدی از اسب پایین بیا و پیاده حرکت کن موقع بازگشت میبینی که هر سه اسب تو جاده هستند. اما مهمترین توصیم به تو اینه که هرگز هرگز به صورت پری سپیده دم نگاه نکنی اون تو خواب بیش از حد تصور زیباست. اما تو بیداری اگه به چشماش نگاه کنی افصول میشی و تو رو با نگاهی به ابلهی میرسونه. اون نفرت انگیز بلکه نفرت انگیز تر از هر چیزیه که بتونی تصورشو بکنی. کنی. چشمایی شبیه چشمای جغد داره. چهرش مثل روباهه و پنجولای ای داره. پس حواست کاملا جمع باشه به صورتش نگاه نکنی. پترو از اون تشکر کرد و بالاخره آماده رفتن شد. اون تا دور دستا رفت. جایی که آسمون به زمین میرسید و ستاره ها به گل بوسه می زدن. روشنایی سرخ فام بس زیباتر و شگفتانگیزتر بود. آن روشنایی از فراسوی کاخ پری سپیده دم میتابید. دو روز و دو شب زمان برد تا پترو با گذر از چمنزاری پرگل به اونجا رسید. علاوه بر این هوا نگرم بود نه سرد، نه روشن بود نه تیره. همه چیز به گونه‌ای دیگه بود و پترو همچنان به پیش رفت. پس از مدتی چیز سفید دید که سر به پهنه آسمان سرخ کشیده بود. همچنان که نزدیک میشد، کاخی بسیار با دید، که با دیدنش مات و مبهوت مونده بود. اون اصلا فکر نمیکرد که ممکنه چون قصر شکوهمندی تو جهان وجود داشته باشه. وقتش نبود که وقت تلف تلفگانه. تکونی به خودش داد. از اصب پایین پرید و حیوانو تو سبززار پرشبنم رها کرد. بعد نی و در آورد و در حالی که پیش میرفت نی نینوازی کرد. هنوز چندان پیش نرفته بود که چشمش به قولی بسیار بزرگ افتاد. قول با شنیدن نوای نی به خواب رفته بود. اون یکی از نگهبانای قصر بود. قول به پشت افتاده و خوابش برده بود. اون به قدری تن بود که پترو با تموم عجلهی که داشت تصمیم گرفت اندازش کنه. هرچی جلوتر می مناظری که می دید در نظرش عجیبتر و هراسنگیزتر میشد. شیرا، بابرا، اجدهاهای هفت سر همه در زیر تابش خورشید به خواب رفته بودند. نیازی به گفتن نیست که اجدهاها چگونه بودند، چون که هر تو این روزگار میدونه که اجدها موجود شوخی برداری نیست. پترو مثل باد از میونشون گذشت. آیا شتاب یا ترس بود؟ که اون چانین به پیش میتازند سرانجام به رودی رسید اما آیا کسی حتی لحظه ای میتونه فکر کنه که چگونه رودخونه ای بود؟ رودی که آب نداشت و به جای آب شیر در اون روان بود و بسترش پوشیده از سنگای قیمتی و مربارید بود و شنریزه و سنگ نداشت رود جاری بود اما نتند و نکند و در این حال تند و کند به پیش بود. رود به دور قصر بستر گسترده بود و در کنارهاش شیرایی با دندونا و پنجه های آهنی نمیده بودند. در فراسوی رود باقایی بود که فقط موجودی چون پریه سپیده دم میتونست اونا رو داشته باشه و پریا و پریه سپیده دم روی بستری از گلا آرمیدن. اثر تمام این چیزا را از جایی که ایستاده بود میدید اما چگونه میتونست از رود بگذره؟ برای رسیدن به قصر باید پلی وجود داشته باشه بعد چشمش به چیزی مثل پل افتاد چه کسی میتونه بگه که پل از چی ساخته شده بود به نظر می رسید که پل با ابرهای سفید ای ساخته شده بود قول استاد و به فکر فرو رفت که چیکار کار کنه. باید از پل میگذشت پس از مدتی تصمیم گرفت که خطر کنه. پس به سوی قول خفته رفت. فریاد زد و تکونش داد. بیدار شو قول شجاع من. قول بیدار شد و دستاشو دراز کرد تا پترو رو بگیره. انگار میخواست نگستیو بگیره. اما پترو تونه دمید و قول دوباره به خواب رفت. پترو سه بار این کار کرد و همین که مطمئن شد اونو به اختیار خودش در دستمالو دست درآورد دو انگشت کوچیک قول رو به هم بست و برای بار چهارم فریاد زد بیدار شغول شجاع من. قول که متوجه شد بازی خورده به پترو گفت آیا این کار رو مبارزه منصفانه می دونی؟ مبارزه برای خودش اصولی داره. اگه واقعا قهرمان هستی. پترو گفت من کاراما قدم به قدم پیش میبرم. حالا از تو سوالی دارم. اگه با تو عادلانه مبارزه کنم آیا منو از رودخونه میگذرونی؟ قول پذیرفت و سوگند یاد کرد. همین که بند انگشته ی باز کرد اون به طرف پترو یورش برد تا بتونه با ضربه ای اونو از پا دراره. اما پترو حریفه کوچیکی نبود همین دیروز یا پریروز بود که شجاعانه از میدون چند نبرد سر بیرون اومده بود سه شبانه روز نبرد خشونتبار ادامه یافت گاهی قول و گاهی پترو چیرگی داشت سرانجام هر دو به زانو افتادن و زمینگیر گیر شدن پترو از فرصت استفاده کرد و خودشو به بالاتنه تنگی قول رسند و شمشی رو روی گردنش بشار داد گول فریاد کشید رهان کن ولم کن من شکست خوردم فترو پرسید پس منو از رودخونه میگذارونی؟ گول گفت حتما فترو پرسید اما اگه قول تو بشکنی با تو چه کنم؟ گول گفت میتونی جونم بگیری هر جور که دوست داری حالا رهام کن پترو گفت بسیار خوب. اما اون باریسمانی دست راست قولو به پای راستش بند کرد و با دستمال دهنش محکم بست تا نتونه فریاد بزنه. بعد با دستمالی دیگه چشمای قولو بست و اونو به سوی رودخونه بود. همین که به کناره رود رسیدن قول اون پاشو که بسته نبود بلند کرد. بعد پترو را تو کف دست خودش نشوند. و با گذاشتن پاش در طرف دیگه رود، پترو رو سالم کناره رود به زمین گذاشت. بلا فاصله پترو نیاده رو ورد و درون اون دمید و قول با شنیدنش دوباره به خواب رفت. حتی پریایی که پایین رود خونه بودن، با شنیدن نوای نی میون گلای کنار رود به خواب رفتن. پترو با گذر از کنار رود اونا رو دید و با خودش فکر کرد اگه اینا تا این اندازه زیبا هستند چرا پریسه دم زشته؟ اون بیش از این درنگ نکرد و به راهش ادامه داد. سر راهش به باقای شگفتی آور رسید که از همون دور دست زیبا و شگفتانگیز به نظرش رسیدن. هیچ گل پژمرده ای اونجا دیده نمیشد. شد. همه پرنده ها در جنب و جوش بودن و ترانه می خوندن. پتروش شتابان به سوی قصر رفت. کسی اونجا نبود تا جلوشو بگیره چون که همه تو خواب بودن. حتی برگای درختات تکون نمیخوردن از محوطه قصر گذشت و پا به ساختمون گذاشت. اون چه در اونجا میدید نیاز به گفتن نداره. همه مردم جهان میدونن که کاخ پریه سپیده دم با بقیه کاخا متفاوته. تلا و سنگای قیمتی مثل ریک تو سر سر قصر به کار رفته بود. استبلایی که در اونا اسبای خورشید نگهداری می بسیار شکوه از کاخ بزرگترین امپراتور جهان بود. پترو از پله ها بالا رفت و با شتاب از میانه 48 اتاق گذشت. تموم پرده ابریشمی بودن و تموم اتاقا خالی. در چهلانه همین اتاق پریه سپیده دم و دید. در وسط اتاق که به اندازه یه عبادت کرده بزرگ بود، پترو چشمه معروف با شکوه پری سپیده دم رو دید. همون که به خاطرش زادگاه و پدر و برادرشو ترک کرده بود تا پیداش کنه. چشمه مثل بقیه چشمه ها بود و به نظر عجیب می اومد که پری اونو تو اتاق خودش داره. با دیدنش هر کسی متوجه می شد که اون چشمه صد سال اونجا بوده. پری سپیده دم کنارش آرمیده بود. بله، اون خود پریه سپیده دم بود. همین که چشمه پترو به پریه خفته افتاد، نی از دستش افتاد و نفسش بند اومد. نزدیک چشمه میزی بود و روش قرسنونی که با شیر پخته شده بود، و تانگی نوشیدنه قرار داشت. نون، نون قدرت بود و نوشیدنی نوشابه جوونی جوانی. پترو خوردنشونو کرد. یه بار به نون و یه بار به نوشیدنی نگاه کرد و دیگر بار به پری سپیده دم که همچنان روی بستر ابریشمین آرمیده بود خیره شد. همچنان که نگاهش میکرد، مه برخواست و حواستشو در خود گرفت. پری چشماشو آروم باز کرد و پترو رو دید. پسر جوون احساس گمشدگی کرد. اما به خود اومد و نیو به لباش نزدیک کرد و نبای از درونش برا پری دوباره به خواب رفت. پترو تاج گل زرینو در آورد و به سر پری گذاشت. تکه اینون خورد و پیاله ای نوشیدنی سرکشید. این این کارو سه بار انجام داد. بعد ققمه رو عذاب چشمه پر کرد و مثل تیری که از چله کمون رها شده باشه ناپدید شد. با گذر از باغ احساس میکرد که موجود دیگه شده و با قبل فرق داره. گلا، زیباتر، جویبارا را روونتر، آفتاب درخشنده تر و پریاز شادابتر شده بودن. از کنار هر چیزی با آرامش خاطر گذشت. کمی بعد روی زین اسب جا خوش کرد. تندتر از باد، گذرنده تر از فکر، رهیابنده تر از آرزو و شتابنده تر از بیزاری پیش تاخت سرانجام از پشت اسب فرود اومد. اسب و کنار جاده رها کرد و پیاده به سوی خونه ناهید رفت. ایزد آگاه شد که اون میاد. پس به پیشبازش شتافت و براش نون سفید و نوشیدنی قرمز برد او گفت خوش اومدی شاه زاده. پسر جوون که قمقمه آب جادویی و تو دست داشت جواب داد روزت خوش، هزار بار از تو سپاس گذارم. اون مقداری آب به ایزد بانو داد. ناهید بسیار شادمان شد. پترو پس از اندک زمانی ره سپار زادگاه خود شد. اون نباید وقت و تلف میکرد. سر راهش مدت کوتاهی در سرزمین ایزد بانو در توقف کرد. پس از بدرود گفتن با اون شتابان راه پار شد. اما ایزد بانو صداش کرد و گفت کمی صبر کن. باید به تو حشداری بدم. هشیار باش چون که بیمناک جانت هستم. سر راهت با هیچ مردی دوستی نکن. تند نرون سخن کسی و باور نکن و از آدمای چاپلوس دوری کن برو مراقب خودت باش راهی دراز در پیش داری و پا به جهان پرشرارت میگذاری و چیزی بس گرانقدر با خود داری اینک این جامعه رو به تو میدم تا حمایتت کنه. این جامعه به نظر معمولی میاد اما افسون شده و هرکی اونو به تن کرده باشه هرگز از آزرخش آسیب نمی بینه. اونو نمیش کافه. شمشیر بر اون کارگر نیست و تیر از اون نمیگذره. پترو سپاس گذاری کرد و به راه افتاد. توی راه ارزشمند و باز کرد و جویای اخبار شد. صدا از درون جبه بر اومد که اوزا به سامان نیست. اونک کرد و چشم امپراتور نابینا شده، و فلوری و کاستان اون زیر فشار قرار دادن تا فرمان روایی اون سرزمینو به اونا بسپاره. امپراتور میگه تا زمانی که چشماشو با آب چشمه پریه سپیده دم و از حکومت کنارگیری نمیکنه. سپس برادراش پیش بیوشای پیر رفتن. زن افسونگر به اونا گفت که پترو با آب چشمه در راه بازگشته. هر دو برادر برای دیدار با پترو آماده شده و به راه افتادن. هدفشون اینه که آب چشمه رو از دستش در و با تقدیم اون به امپراتور فرمان به قلمرو وسیع اونو به چنگ آورند. پترو با خشم بریاد زد دروغه، و جعبه رو پرد کرد. طوری که هزاران تیکه شد. طولی نکشید که از همون دور سرزمین زادگاهش رو دید. به پل که نزدیک شد دهانه اسب و کشید تا بهتر نگاه کنه. همچنان که به زادگاهش مینگریست از دور صدایی شنید. گویا کسی اونو به نام میخوند. صدا گفت تو پترو هستی. اسب فریاد زد اعتنایی نکن. برو برو. اگه توقف کنی، آسیب خواهی دید. پترو در حالی که سر اسب و برگردون گفت نه، سب کن بذار ببینم کیه و چی میخواد و با دو برادرش رو در رو شد. اون حشدار ایزد تند نوتانده از یاد برده بود. وقتی کاستان و فلوری به اون نزدیک شدند با سخنهای چاپلوسانه زبان گشودن و اونو فریفتن. پترو از اسب پایین پرید و به سوشون دوید تا دو برادر رو در آغوش بگیره. اون هزاران پرسش و هزاران مطلب گفتنی داشت. اسب قهوهی سرش و پایین انداخته و در غمی جانکاه فرو رفته بود. فلوری فریاد زد پترو برادر عزیزم آیا بهتر نیست که ما آب چشمه سپیده دم و برات هم کنیم؟ یه نفر سر راهت کمین کرده تا اونو از چنگت دراره. کسی نیست که از ما حمایت کنه. کاستانم گفت اینطوره. حق با فلوریه. اما پترو سرش رو تکون داد و هرچی ایزد با در به اون گفته بود براشون تعریف کرد. حتی درباره جامعه که به اون داده بود اونا رو آگاه ساخت. برادرا متوجه شدند که چاره ای جز کشتن برادر کوچیکشون ندارن. در ای به مسافت پرتابه یک سنگ، چشمه ای با آب زلال قرار داشت و آبش تو جویباری جاری بود. فلوری از کاستان پرسید تو تشنه نیستی؟ و به اون چشمک زد. کاستان که از قصد برادرش آگاه شده بود جواب داد چرا تشنه؟ بعد هر دو برادر به پترو گفتن بیا برادر فعلا بهتره آب بنوشیم. پس از فرونشاندن تشنگی هر سه با هم راه می ما حمایتت میکنیم تا آسیبی به تو نرسه. همون موقع اسب شیهی بلند و معنیدار سرداد و پترو فهمید که منظورش چیه. اون برادرشو به حال خودشون گذاشت و از اونا دور شد. سرانجام به قصر پدرش رسید. نزد پدر رفت و آب چشمه رو به اون داد. امپراتور چشمه با آب چشمه پریه سپیده دم شست و شوداد و بینا شد. برادرهای پترو هرگز به کاخ باز نگشتن. سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها هایی از غور ها و کوطول ها ماجره از جادوگرها سفر به سرزمین های جادوی و تلسم شده رفتن به دنیای پریان ماجراجویی در سرزمین های زیر دریا